چند دقیقه بعد شعره و الان یه قصیده‌ای هست مال ملک و باها. این این هایی که شکایت از حبت درش هست در ادب فارسی بهش میگهن حبسیه حبسیه یعنی شعری که شاید زندانی شده بعد اونجا شکایت میکنه از زندان ناراحتیش اول کسی هم که این کار کرده محصید سعد سلمان چه حبسیه‌هاش هم از همه بهتره و هم قبل از ما چهتاب تو رو هم مسادره کردیم چهتاب رو بهتر رده میتنم من عرض کنم که باهارم حفظش میکنند چند بار چون چاهر سیاسی بود و دوست دیداشت دکتری به نام دوستر لغمان اتهم که لقب لغمان رو دوله و چند بارم به وزارت رسید، دوستار، خیلی درجه اول خیلی معروفی بود در ایران و مخصوصاً خیلی یه چیزی داشت، طبیعتی داشت که کسی که بوی مرض رو پیشناختید و مثلا دوستار محسوس مرمون فروبی بود به وقتی مرمون فروبی حالت با هم پرده بود، رفتم سراغه دکترهای دیگه نبود. دکتر لغمان دوله نبود. رفتن امیر علم و نمیتی دکتر دیگه رو آوردن. اینا مارجات کردن محسن نبود. اجبه که بمیره. تا دکتر لغمان هستم میرسه و میاد و بعد هم این کارو رو این کارو رو بکنی، اینا هم میبینن که درست عکسه کاران رو می‌کنه و خلاصه راش می‌دسه. این رفیق ملیق شعرها بود و ملیق شعرها در دوره پهلوی اول زندانی سیاسی زندانی سیاسی اون روزگار کسی جرعت نمیکرد اصلا سراغش بره اصلا جرعت نمیکرد اسمشو بره. ولی این رفته نه تنها رفته به ملاقاتش رفته دنبال کارش رویده بعد رفته فلوی زن گفته که موادا شما معطل باشیم موادا با ناراحت پول باشیم چیز کرده عاالمی دوستی و که با به هر حال اونهایی که گوش به حرف لغمان دولو بالاتر از لوغمان دول نمیکردن راج زندانی خود رضا ها شخصا تصم می گرفت. تصمیم میگیرن باها رو تبدیش میکنن به اسمان که اون تبدیی به اسمان از هبسی زندان بدتر بوده. خیلی رشش ت میشه. و هر حال در اونجا، یه قصیده ای میسازه در متحه دکتر لغمان ادهم و شکایت هستم و این رو میسازه برای دکتر لغمان هم و الان در دیوانش اما علت این که من اینو خوندم برای اینه که من آیغار شاعر باشم یه قصیده ای میساختم در متحه این بزرگوار که اینجا نیسته نه دیگه در حال ایتونم محبت زیاد کردن و ما فقط این قصیده رو که یکی در وصف یکی چیز کرده میخونم چون شاه کارم هست این بسیار بزیار زیباییست باشم نوشته این قصیده را نیز از اصفهان در شکایت از ابنا زمان و شرح احوال زن و فرزندان و ستایش دکتر لغمان و دوره ادهم از یاران خاص بود سروده میگه پشت مرا که از چند بری گردش این گنبد میگو هستم من ایسی آموزگاه کرده جهودانم هفت از خری پس که به من تیر به باقرید و تیر روزم شد تیره و عمرس پری سا جدا از پسر و دخترم دشمنم از بی پدر و ماغری چون نگرم نیست گناه مرا غیر وطن و شاعری وزره آزاغی و قامعی گر نکشم ذلت فرمان بری کردم به روز ذر و جاه و مال تا نکنم چون دگران شاعری نوکری دیوان دیوامگی ست درست, درست درست نوکری دیوان دیوامگی مردم دانا نکند نوکری مزدوری کرده و نان می کورم مزدوری بهت تمق دستری آقبت آز و تمق خاری هست که در همون دوره تیمورتاش شخص دوم بود در من کرد و وزیر دربار پهلوی بود در همون روزگار از پشت میزه دربار که از اونجا امرو نه میکرده نخواست وزیر و وزاره و همه جا گرفتن بردنش تو زندان و در زندانم هم پشتنش و متاسفانه در زندان هم خیلی زفت میشوندار این مردی که به نظر میمد مرد خیلی مقدری باشه یه مرتبه در همچه کرد او آز و طمع خاری است وقعه تیمور مبین سرسری گرچه کنون هر تو به حبس اندری فرق بسی هست در این داغری خال بر او لعنت نفرین کن بر من احسن تو و فری پس و اجزاب و این اشاره به همون ضعف است و ای اجزاب رد و فوتکن و خودخواهی و مستکری خون دل خودخوری آسانتر است تا خود خون دل مردم خوری حبس من این کیفر پیشی نه بعد مکنه دو که کیفر بری وان کست که امروز به من کرد بعد روزی کیفر برد و بدتری قیمت آزاقی و اشرت بدان ای که به آزاقی و اشرت داری خسته شدم یاف را در دردارم چیست کنون چافر به جز چافری شد که شد دامنم از نه دو شد که آمد دلم از کین عری عری یعنی آری یعنی دی بحره از کین. دارم فرزندی حوچنگنام پسر بزرگش بود که اینجا رئیسی کالیجی بود در امریکا و مرد چندی تیر چند سال دیش دارم فرزندی حوچنگنام شکرن لحظه معاقه پری بسپس حوچنگ چهار دگر مامی و مهری ملکی و پری مهری ظاهرن مهردادشی اون ستام هم اسم ستا بعد هم یک دختر دیگه هم آورد به نام چهرزاد که زن دکتر یحیای معاصر اهل کهرمان توشی باشد به مسل عقل و رود تشد مهمه بود برتری؟ مادر ایشان چه بود؟ کهکشان آن که به اجرام کند مادری گر به طبیعت به گذاریش باز و از غم خرج بچگان بذاری همچن راه از نجوم خواه نکند پرمه و پرمشتری هفتم ایشان من من درده چون قلق هست ز بی اختری لوت و توحیدست و خمید زباد چون ز نگین انگشتری لاغر و خم میده ولی یک ولی که همه با لاغری گشتم چون چمبر و باغزم به پوتک رنجان داخرد پلک چمبری خواهد تا بشتند این حلقه را حلقه نگیندان کند نگیندان یعنی انگوشتند خواهد تا بشکند این حلقه را حلقه نگیندان کند از زرگری خصبه نشانت نگیندان درون اون گوفر مد فلک سرگری لغمام دوله که همچون مسیح می سزدش دعوی پیغمبری چرخ هنر زاده ادهم که هست با هنرش راقی و ناماوری هست دلی پنهان در سینه چون اقیام واقعا مطه این زیبایی خیلی کم چیزم بوده دیگه این اثر سر و عقیده بوده گولی که نبوده این است که خیلی مطه زیباییست هست دلی پنهان در سینه چون اقیاموست به فهناوری همت او بر تو شود آشکار بر در شهر روزی روی در این محکمه اش پر بود از مردودان او رو غنی. لشکری و کشوری با امرا کم رسد از بس که هست با فقراب و اشتر شفقتگری بیند نبز و بنویسد تواصیم دوامی ذهت بر نیم شبر از راه دور حاضر گردد به مثال پری منعم و در بیش به نزدیک او فرق ندارند در این داخری از تن بیمار کشد در هر هرچه بود باستنی و داخری گیگرد مردانه گریبان مرگ و از در مشکوم مشکوم این ادا خجره. گیرت، مردان، گریبان، مرگ و در مشکو کندش رهبری بوی مرض را بشناف دو. ما هم دکتر اقبال هم در بیماری های اوخونی این بوی بیماری رو میشنفته و این میامده از دور میگفته این مریض مثلا نه از یا فلان بوی مرض را بشناف سد دو چون رسد از را زهی عبقری، عبقری با این و یعنی نابغه چون شنود بستری آواز او گیرد آرام دل بستری جمله جوان مردی و آزازگی جمله خردمندی و خوشمهزری او را بودند شهان هاستا روز و شبان با همه خوابشگری خدمت مردم را کرد اختیار وامد از خدمت شاهان قرید چون که به مخلوق خدا گشت یار لا جرمش خدا یاوری گشت در این ملک نخستین به این خینت نکونامی و داد خدا زن بالا گوهر دختر و چندین پسر گوهری و علاور همه اینا یافت ستاینده یکی چون با دبومی فرقی و, و انصری یارا در طب و عدب اینجا با من و تو کس نکند هم من به سزا وقت ترا در کورم تو به سزا مدهمه مرا در خوری. این عوض آن که به محبت مرا دیدن تردید زدار خم خوری رفتی نزدیک زن و بچه ام شف قصد کرتی لطف قصدری خواهش بردی بر قومی که بود حیف تو بر روخشان فنگری داشتیان یا به سخنشان براست از سر خوشقلبی و باوری گوش نکردند به فریافت بی بیشرفان از خری و از کری گوش به دانا نکند آن که هست قرره به نافامی و تنفروری هست اش بر اینان کساد هرکه که فوزون تر بودش مشتری دشمن دانا این کافران دانش باشد برشان کافری چیست در این شهر کناه بها دیگر خرطمندی و دامشبری زین روش و به فصلی که بود مبسن گل چیدن و خونیا گری گرد نبود بس عجب زا بود دشمن کپ که تری ور بود از دین خر اسمت بیدی بی ز بیچادری این مسئله معروفش میگن که خونه شد بیبی بی بی از بی یعنی بیبی بی دادری هست و اندازه پاکی اونتا چادر نداره اینکه <تصفيق> نمیتونه بسید از نگشندش خود از بی بی خلق اسمت بی بی بی خاطر دارها اون جهاندار هست پاک چو آوینه اسکندری مجبوره بگه لیک نگوید کسش احباه من. این موزی و قدگوپری هر که قم خود خورد و نیست کست در تم این مملکت مردری مردری یعنی مردری که مردری یعنی میراث مرد و زن از گرسنگی در خروش بین امراغ کرده ورم از پوری جملگی از خوب پخیانا پخیش کرده رها قاعده نوکری حال مرا عرضه نیارند کرد تا بره آندم از این مزتری یک طرف خاموش خاموش خیر عموم لیک به بدروی مردم جری جود و سخا رفته و مردانگی جب محسد مندو و حیدتگری بینده بی گر کس که سری بیگناه بردم تیق آمده از جاوری بر سخنی ارزن ما اوید بشا بو که رحت در نفس آخری گر نروب پای زری در میان دم نزمدی به خیلی سری یک سره هم ظالم و هم دادرد یک سره هم قاضی و هم مفتری. لغمانا دار زمان یادگار این سخن تازه و نظم تری زان که به تو شود بیگناه کشته داریم من بکر پر برداریم این قصیده ای که در عنوان حقشناسی در ستایش روز هم ساخته بوده و بقلاده هم زیبا حتشناسی. شما در بسترین اوقات به داد ما رسیدین و هیچ از شفقت رو محبت هم باز نگرفتین و خب جای سپاس هر چی باید. حالا بریم سر کار حافظ از خهی از و فری عدات تحسین خوشا و احسنت تو خیلی یک فرید یه خلد دو لعنشو نفرین کنن بر من احسنت تو خیلی یک فرید خیلی خیلی طول آقای اصول جواهری ولی ایشون دکتر معالج بنده بودند و در بدترین احوال به داد من رسیدن من که شاعر نبودم خودم گفتم یه شعری که در این زمینه سروده شده شاعری از یه طبیبی ستایش کرده، بیارم بخونم هم که بود، که. چیزی به دکار خالی خود ناصر پل این فضل رو بخونه؟ بیا، هم دوباره می‌دیو من اون مطمئنی؟ فضل ایس و آنان, آنان که پاک را به نظر کیمیا کنند آیا غوط که گوشه چشمی به ما کنند دردم نهفته به ز طبیبان مدعی باشد که از خزانه غیبش دوا کنند محشوقه چون نقاب ز نمیکشد. هرکس حکایتی به تصور چرا کنند به چون حسن عاقبت نبرندی و است آن به که کار خود به عنایت رها کنند بی معرفت نباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنند میخور که صد گناه زغیار در هجاب میخور که صد گناه زغیار در حجاب. میخور کسد گناه زغیار گناه, گناه زعقیار در هجاب بهتر زتاعتی که به روی و ریا کنند ایرانانی که آید از او بوی یوسفم ترسم برادران غیورش قبا کنند حالی درون پرده بسی فتنه میرود تا آن زمان که پرده بر چه چها کنند سنگ از این حدیث بنالت عجب ندار صاحب دلان حکایت دل خوش عدا کنند خوش عدا کنند حافظ دوام وصل مویثر نمی شود شانهان کم التفات به حال گدا کنند ارض کنم که من حالا این غزل می خونم کنم دوباره <متصفيق> بعد ارضیم آنان که خواهد را به نظر کیمیا کنند آیا بود که دوشه چشمی به ما کنند دردم نهفته بهده طبیبان مدعی باشد که از خزانه غیبش دوا کنند معشوقه چون نقاب بر نمی کشد هر کس حکایتی به تصور چرا کنند حسن هوست نه عاقبت نبرندی زاهدی است آن به که کار خود به عنایت رها کنند بی معرفت مبا که در من اهل نظر معامله با آشنا کنند می خورد که صد گناه ز در حجاب بهتر از طاعتی که به روی و ریا کنند پیراهنی که آید از او بوی یوسفم ترسم برادران دیورش قبا کنم حالی در اون فرده بحثی تکه می تا آن زمان که فرده بروفتت کنند. در سنگ از این حدیث بنالت عجب مدار صاحب دلان حکایت دل خوش عدا کنن. حافظ دوام وقت مویستر نمی شود شاهان کم التفاق به حال گدازون این غزل یه معارضهی یه نوع جوابی به قتل شاهنه امت الله ولی شاهنه امت الله ولی مرد بسیار جاسنگین و مرشد بسیار بسیار معروف و مقرد تولیده دارای مریدان بسیار بسیار زیاد و سید شجردار صحیحون و نسبم بود یعنی از نسل مستقیم علی و فاطمه خریسمام داشت و به داشت و مریدان زیاد و یه چیزی شد برای خودش و مریدانش در عهد کرمان بود عهد ماهان که مزارشان الان در ماهان کرمانه و خیلی خیلی خیلی طرف توجه مردم بود و شاید ده تا کتاب یا بیشتر در شرح احوال شالمت الله و کاراش و بعضش و زندگیش و سخنانش و موریدانش و اینا بنابراین آدم خیلی خیلی مهم اگر از لحاظ تصبف و معارف تصبف پای مثلا ابو سعید عبول یا شیخ علاستان خرقانی یا ابو عبدالله خفی یا عبو اتحاوز و امثال اینا نمیرسه ولی از نظر که اداد مریدان و نفوذ کلمه و اینکه حرفش هر همه جا در روم داشته باشه و هر کسی هرچی بگه ببوسند و به سر و چشم بگذارن از همه اینا کرد. و الان هم درگیش های نعمت اللهی دنباله یه سلطقه یه هستن شانمت الله که شانمتالله بانیاد گذاشته که الان یه دست بشون نعمت اللهی هستن که الان آقای دکتر نوربهش و قبل از رو برمون زور ریاسته. ریاستشون داشت یه دست هم گنابادی هستن که گنابادی هم منشعب از همین طریقت نعمت اللهی هستن حاجمولو سلطان سلطان علی گنابادی در دوره ناصرالدین شاه دعوی قتبی کرد به یه سلسلی برای خودش درست کرد و یه مردی به نام حاجم الله ابسلی کیمان جد این دوست شهید من مرتضای کیمان این واعظه بسیار بسیار مطبول و خوب به طرف قبطهی بود فوق العاده بفنید و در نتیجه مورید این گنابادی شده بود و تمام اعیان و اشراف و بزرگان شهر تهران میادن پاهمبر حاجم الله و این دعوت کرد همه مردم رو تیوستن به ها در حقیقت سلطلی گنابادی رو او سلطلی گنابادی کرد اما بعد از اونا پرید و به نظر شما که کرداری که با اون چه میگن مطابق نیست و آمد بیرون و کتاب در ردشون نوشت و در رد اصلا این فساط شیحی و پیری و گرفتن و و بسیار متعدد داره گوشنشین شد و مختصر به زبای اینکه که میگه که من آدمیم برم که چندین هزار آدم جان و مال و سر و خونشون رو در راه من آذر بدم ولی من فکر کردم که اینا بعد فعدا منتظرم که من دوست قیامت اینا رو دستگیری کردم و رسوندم به سرمنزل نجات من خودم سرمنزل نجات ولد بودم جوری جواب اینا رو بدم به بیدار بوده میکنه. و با خوبی که داشته تمام رو میشینه نوشتن و چافت میکنه کتاب های متعدد تختیر کیبان، بهین سخن، راز بوشاب، کیوان بهین سخن راز بوشاب نامه نمیتونه کتاب استوار و امثال اینا و در مقدار زیادی از اینا این کارهای تنهانی درویش ها رو از هر طبزه و به خصوص درویش های نعمت رو میلیزه پیرون از پر. به هر حال حضرت شاهنما الله ولی عرض کنم که سید شریف بزرگواری بوده، آدم خیلی خوبی هم بوده، ظاهرا طرف توجه از شاه تا گدا مریدان بسیار ده ها هزار مریدان بوده، اما شعر بعد نگفته متأسف. دیوانی ازش در دست دیوان شاهنما الله که بزرگتر از دیوان حافظه اریان دو سه باری هم چهار باری هم چاپ شده و من اول بار در سنین خیلی کودکی یه اوست فیلم دوست داشتیم در حل مون بود که فیلمدوزی میکرد و این ثبات داشت و من همون وقتها تعجب میکردم که این فیلمرد با این سواد و اینا چطور نشسته کار فیلمدوزی میکنه ولی جاسوس ماستان نبود بشاره تو همون دو خوند موند و همونجا مرد دنبال این که این از روح اومده و نبود اول بار که اسم شاهمت الله شنیدم من تازه تحصیل دارم 27 سالم بود و 10 سالم, سالم بود درست دارم میم از او بود و او گفت شاهمت الله تمام چیزای رو چیزا در بعد ها در آینده اتفاق افتاد همه رو پیش بینی کرده همه رو نمیدونم شاه ربی مول چابی قرار میدینم من می بینم. را فلان میبینم یا داره که تیکه‌ای هم ازش در دوره انقلاب تی کی به نام شاه نعمت الله حالا دوستان خودشون ساخته بودن و وزن او یا از دیوان شاه نعمت الله در آورده بودن اون در آوردن از دیوانم خیلی کار مشکلی نیست برای اینکه اینا کلمات دو پهلو میگن مثل نوستراداموس معروف پیشگوی فرانسوی چیزایی میگن که بشه تفسیر کنه به همه چیز و بعد حادثه اتفاق میفته تا زدن میفهه که این میشه به این بشه و اینا پیش از اون نمیشه به هر حال برای شانمت اولام اما تأسفانه این سید جلیل و قصب بعد چهه گفت که دو تا خسات رفتن پیش مولا علی و عبی طالب و دعوی داشتن یکی میگفتش که من خرستم بهتره اینکی میگفت من خرستم بهتره و گفتن که حکم قرار میدین مولا علی رفتن پیش حضرت و دعویشون رو عرضه کردند و گفتند و حضرت هم یکشون انتخاب کرد اون طرف قبول نداشت یعنی معتقد بود که خط خودش بیتری گفت یا علی اللهی، داماد پیغمبری کننده در خیبری پدر حسن حسینی داماد پیغمبری کررار غیر فراری ساهز زلفقاری همه اینا به جای خودش اما خط نمیشن حالا شانمت مطلا. با همه جلالت قدری که داشت من اگه جای شانمت علا بودم اون شعر رو نمیگفتم از جمله قذلی که من آوردم اتفاقا اول میخونم این شعر که دو دفع خونده الان جلو روتونه بگهر از مار این ها سه پلکونده گرفتم باقی جلو روتونه اینه من میخونم بعد اونان حرف میزن میگه ما ما خاک راه را به نظر کیمیا صد درد را به گوشه چشمی دواد در حفظ صورتی و چنین شاد و خرمی بنگر که در سراته معنی چها کنیم رندان لاعبالی و مستان سرخش خوشیار را به مجلس فوت کی رها؟ موجب، محیط، گوهر، دریا عزتی ما میل دل به آب و گل آخر چه در دیده روز ساغی و جام می نید آری بگو که گوش به آقل دوباره چرا کنید ما را نفس تو از دم عشق لاجرم بیگانه را به یک نفسی آشنا کنید از خود برا در یک مریدگیری هم یعنی قسم طلب هم هم. از خود برا در صفح اصحاب ما خورم تا سیدانه روی دلت با خدا کن سیدان تخلصیم حافظ با اون تنگ گذنبه محسوسش میگه آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن آیا بود که گوشه چشمی به ما کنن؟ درد را به گوشه چشمی دوا کنید دانه آقابل ما خاک راه را به نظر کیمیا کنید سب درد را به گوشه چشمی دوا کنید میگه آنان که خواهش را به نظر کیمیا کنند آیا به بو وقت گوشه ششمی کنند بعد تو دردش میگه دردم نهفته بهز طبیبان مدقی طبیبانی که دعوی دارن فقط باشد که از خزانه قیفش دواب کنند عشوقه چون نقافت به بر نمی کشد هر کس حکایتی به تصور همه اختیارات ای ایشون داره میگه بیا با یه نفس تعفیکی کار می‌بین جو حالا بعد میگه چون حسنه عاقبت نبرندگی و زاهدی است آن به که کار خود عنایت ها کنند یه مسئله ای در, در علم کلام و در عقاید شرعی روزگار سعدی و حافظ و اینا که عقیده رایج معمولی بوده و اون این بوده است که میگفتن بهشتی می بودن و جهنمی بودن و سعادتمند بودن و من بودن شکل مربوط به انایت الهی. یعنی ممکنه یک کسی یه عمری نماز و ساعت بکنه و خداوند چون مردوده در اول از نظر خدا این مردود بوده به مثل ابی. به بفتن سال و این بارها در شعر سعره آمده شریع میگه که اگر خدایی نباشد به ای خوشنود شفاعت همه پیغمبران ندارد که گنه نبود و عبادت نبود و همیز نه نشده بود گنه نبود و عبادت نبود و بر سر نوشته بود که این مقبل است و آن مرد و تو خبیس یا تو مرد <تصفيق> <تصفيق> این عقیده جاری رایش همین است که خاجم میگه میگه یه وقتی حسن آقابت به رندی و زاهدی مربوط نیست که لطف الهی مربوطی و در نفس آخر ممکن کسی که بار حافظ نیست میگه قدم طریق ما از جنازه حافظ که گرچه قرق گناه هست رود و بر آستانه میخانه یا سریبینی مزن به فای که معلوم نیست میگه یا میگه که زاهد بسه اون قرورش به جایی نرسید زاهد غرور داشت سلامت نبود راه رند از ره نیاز به دار و سلام این ست تا بید از در دیوان هم کنید یک چم هم چون حسن آقابت نه رندی و زاهدی آقابت خیلی به رندی و زاهدی مربوطی بهتر است که آدم شاه کنه کار خودش رو به انایت الهی باگذار رو کنیم اون بیک قبلی میگوید که ما چنین و چنانیم و عرض کنم که موج محیط گوهر در یاوی عزتی نمیدونم از این حرفا میزنه و ما را نفس رو از دم اشقه لاجرم بیگانه را به یک نفسی آشنا کن. همه کارا دست آقا از بیا مرید شد درست میشه حافظ خوش نیمده از این کارا و اصلا سوپی نبوده. گیرید این کلمه سوپی رو اگه در واجنمای حافظ کلمات حافظ حافظ شموردن در کتابی به مثلا چل پنجا با کلمه سوپی به کار رسته تقریبا در تمام موارد با انتقاد سوپی نهاد سر حق به باز بنیاد مکه با خلق به و نظاهی این است که با این بساطا دوست و سوپ نبوده میگه که تو خدا چیز میسید تو ازش خبر داشته بوشید محشوقتون نقافی رو برنمی کشد هر کس حکایتی به تصور چرا کنید معرفت ما باش من یزید به معنی هر آجید. من یعنی کی یزید رو یعنی زیاد می من یزید یعنی چی زیاد می حراج کنید که تو بیزنن؟ میگه 100 تومن؟ میتیم 100 صد ده، 100 صد ده، میکنه صد دیس، میکنه صد دیس؟ این رو شکن من یدوید کی زیاد میکنه؟ یعنی حراج میگه توجه بکن که در حراج عشق اهل نظر فقط با آشنا معامله می‌کنه. بلکه آدم لاطمی ممکنه بیاده قیمت داره بالا و مشتری اصلی که برویده از دست بره بنابراین توجه به اون ندارم که رو به قیمت گذاشتنشون متوجه هم که بشناسنشون رو بذاری من که این برای خریدم میگه بی معرفت مباش معرفت منی شناسایی شناسا آشنایی ریده برای اینکه در حراج عشق اهل نظر فقط معامله با آشنا میکنه اون تو که بیگانه یاد ما با یه نفس ترتیب چون آشنا میکنیم سوپی های خود ریاوان تو کارشون طبعا بوده دیگه شکلی نیست اینه که میگه نیخور که صد گناه زعقیار در هجاب صد تو گناه چنهان اگر بکنی بهتر از ساعتی که از روی ریا بکنیم ریا عبارت است. از آب و دادن عبادت یا کار میکو برای خوشایند مردم برای این که بگن بحبه این آقا چادم بود اینو میگن شرکه برای این که عبادت برای خداست و کسی که برای خوشایند خلق نمازش رو طول میده این بر خدا شریف خایل شده این کار مخصوص خدا رو برای خوشحالند مردم یه خوضه پشش دهد این است که هیچ چیزی رو بدتر از ریا نمیدونه و قزدالی در, در کتاب احیاء و علوم الدین کنش کافی روانی عجیب و غریبی در این باغ می که هو شخص دار می اون رو اصلا ریاهارو میگه، میگه،, میگه میگه میگه این دیگه میشه این دیگه میگه ولی انواع پنهان ریاه هست که خود ساعتش خبر نداره سالها سیال میکنه که عبادت خدا رو داره می در حال که ریاه داره می و میگه از رد به پای مرچه و روی سنگ خارا در شب تار پنهان تره بعضی از افتامشی هست مثلا حالا یه مثالشم بزنم داره اینکه فکر کنید اون جویه ها یه مردیه آب و زاهد و مسلمون و متواضع و دست و پاش خیر و همه کاره خوب بکنه و خدمت به مردم بکنه و همه این کار رو بکنه و همهش هم پیش خودش فکر کنید که من الله و فقط برای خدا این کار رو میکنم هر کشی پیش خودش فکر میکنه، میبینه که بله من هیچ خرق رو در این کارا منظور و نظر نداشم بعد میگه یه وقت این بیاد توی مجلسی دیبینه که اونجوری که باید اینا تحویلش نگرسید یک کسی دیگری رو دیشتر از این بهش عزت بگشتن اگر این در دلش رنجش پیدا کنه و فکر کنه چه مردم بی معرفت هر ناشناسی هستن این کارش برای که در این کاراش منتظر این بود که مردم یه چیزی یه خوش آمدی یه عزتی یه جلوه بلند شدنی بکنه بعد میگه از این, از این عجب اگر یه کسی بیاد و تمام این کارهای خیلی رو همه رو بکن باید به این حساب که من در راه رضای خدا میکنه اتفاقا بعد از چار پنگ سال یه آدم دیگه ای هم پیدا بشه اونم هم همین دوکاره رو در راه رضای خدا بکنه میگه اگر این از فعالیت اونی که آدم در دلش احساس رنگش بکنه و فکر بکنه که ای بابا اومدن در مقابل دوکنم یه یه دوکنبا کردن این کارش بیار و کسی که برای رضای خدا این کار میکنه هر چقدر ازده بیشتری. یا این کار رو بکنن او راضیتر و شاکرتر میگن یک نوع کندکابی کرده غزالی در این باب که واقعاً آدم متحیر میمونی که این مخصوص در اون سالا این چار پنجاه دنیا آمده پونسد و پنج هم مرده 55 سال هم بشه و در این 55 و سال اوم هیچ آدم از علمای دینی هیچ آدم تا امروز و اندازه غزالی با اندازه امام محمد غزالی روی شیعه و سنی و همه ایمان سرگونا تحصیل نزد. محصولاً اینه که ریاض خیلی تنهانه و طور ایست که هیچ طرف خودش هم حس نمیکنه و خیال نمی که ریاض اینه که می‌گه که می‌خورد ست گناه زعقیات در حجاب طرز زتاعتی که ور روی و ریاض راهنی که آید از بوی یوتفم ترسم برادران قیورش قبا کنید قبا که جلوس باز و جامعه یا پیراهن لباسیست که جلوس بستند و هنوز در پچگی ما در دوره یک منت رو در هم, هم شده بود پیراهن که داشتیم جلوس بستند چند دو جمعی میخورد تا بعد با دست پره بودن تیران جلوباز که حالا اول تیران ها جلوبازه خیلی بعد خیلی. این از که جامعه به لباس باز میگفتن می مبخشه جامعه به لباس جلوبازه میگفتن و قبا به لباس باز. و جامعه قبا کردن به معنی دریدن یک خیلی حافظ میگه چون گل گل گلونی گل سر تن گل از نکته او جام قبا کن حافظ گل تمام برگشت کیکست تا پایین حافظ تن گل از نکته او نکت یعنی بوی خوش تن گل از نکته او جامع قبا کن حافظ وان قبا در رهان قامت سالاف نماند نیرسونید وارتز و یوسف و برادران یازدهگانه دیگرش که میبرن و به چاه میاندازنش و بعدم میارن بیرون و میفروشنش رو اذیتش میکنن و اینا که روشن براتون و به هر حال جای بحثش اینجا نیست و بعد قصه اینکه یعقوب هم از خم یوسف ته بهی طول احزان نشد در, در اتاقی که یوسف گرفته اونجا و همش گریه می کرد و در نحچه گریه چشماش سفید شد یعنی سفید شد اینکه و بیض الهوز تو و بیض زد, زد و هوا کذینه از از کندو سفید شد و بعد وقت یوسف عزیزی مصر رسید که عزیز مصر در حقیقت چیزکار فرعان یا آدم سواب مقام در اونجا بوده به وسیله شخصی ساله یا اسمش بشیر بوده یا به عنوان اینکه این بشارت رو می اسم رو بشیر یعنی صفتش بوده من نمیدونم. یه بشیری پیراهن یوسف میاره و وقتی که به شهر کنان داشته می به دروازه میرسه یعقوب می گه نی لحج یوسف لورا انسفن چونکه اگر منو سرزنش نکنید من بوی یوسفم یه پیراهن گم چرطه خود میشنوم فر بگویم همه گویم زلاوی قدیم سر. بعد هم اون بشیر میاد و پیراهن رو میاره و به یعقوب میرسونه و یعقوب اون پیراهن رو به روایت قرآن به چشمش میکشه و چشمش پینام برحال علف کنم که قصفه خیلی, خیلی, خیلی جالبی است و بهتر است که این قصفه های قرآن رو یک کتابی هم به نام های قرآن در آماده شهاغای دوستر یحیای محتبی به نام های قرآن در آماده شهاغای دوستر یحیای محتبی استاد محترم ونده در آوردن این کتاب رو مثل که از امرشارات خارزنیه اگه میل داشته باشین من جلسه بعد ممکنه مشخصات روزیت شهر دیران البته متأسفانه همه قصه های قران رو گویا نداره ولی بسیاری از قصه ها رو داره و البته همه ماها ها این قصه ها رو چم و بیژ ولی به قول شما ما ها دیتیلش رو دیگه نمی‌دونیم اینا یه جزئیاتی داره که <تصح> اون جزئیات رو نمی‌دونید و بهتر است که به تفصیل اینا رو بخونید این اشاره به همون مطلب و تذکیه ایراد خیلی جالبی رو مطرح می‌کنید میگه یکی پرسید از آن گم‌کرد فرزند از از سلام علیکم از یعقوب. یکی پرسید از آن گم‌کرد فرزند یا گم‌گشت فرزند که ای روشن روان پیر خیرد من مصرش بوی پیراهن شنیدی یکی از اینا زیبارش درد ز نصرش بوی پیراهن شنیدید؟ چرا در شای کنانش ندیدید؟ روز اولم گفت احوال ما برق جهان هست جهان یعنی جهنگه از جدن به گفت احوال ما برق جهان هست دنی تیاب و دیگردم نهام هست جهی بر تارم اعلان شینیم جایی تا پیش فای خود ندیم و این خاصیت آدمیزاده میگن آدمیزاد داره احوال ثابته نیست احوالش متفضید برحال میگه پیراهنی که آید از او بوی یوسفم ترسم برادران طیورش تبا کنن یعنی پارش کنن قوی در اون فرده بسیسه سه میرود تا آن زمان که پرده بر افرد. کنه. باز مثل این اینکه سید معتقد بود که رو همه شیره میدینیم میدونیم شیره میدینیم بله چیزش اینه در حبس صورتیم و چنین شاد و که در سراچه معنی شها کنیم میگه حالی در اون فرده وسیفت نمیرفت تا آن زمان که پرده بر افتد شها این همون چیزی که پیام میگه میگه که اصرار از ازن را نه تو دانید این خط معما یا حل معما نه تو خانی یا نه هست از پس پرده گفته من و تو <صح> چون پرده بر افتد نه تو مانید حالی درون پرده بس یه فتنه می روست. تا آن زمان که پرده بر افتد گرسنگ از این حدیث بنالت عجب مدار جاست به رخ سید می که شعر این فتنه <تصحنت> می <تصحنت> در سنگ از این حدیث فنالت عجب مدار صاحب دلان حکایت دل خوش ادا یعنی خوب اشاره به کاره است و بازم آخرش تنبیه هست ثانیاً لو حافظ دوام بحث مستمر نمی‌شه شاهان چند التفات به حال چند اشراقت فرمند تا مرد برسیم. در مرسی در اکثر نصفه در پیسکر نصفه باشه و ایناش هم در نصفه خیلی کمی هست در یک یکی یکیش در یه نصفه فقط یکیش هم مثل که در دو نصفه فقط هست به این دلیل میگه که من اینا رو میزه ای پایش دا در دیگه شاخ نرگست پشک و پر و رخانش دیگه نرگستان کن جار ما چون سازده غاز سما سما سما سما یار ما چون سازده غاز سما قسیان بر عشق دست افشان ای جوان سوقت گوی بزن پیش از آن تجبامتت چوزان کنند آشغان را بر سر خود خود نیست هر چه فرمان تو باشد آن کنند مردم چشمم به خون آغشته شد در کجا مزون بر انسان کنند طرف از قطفه‌ای آن ها که از توفان کنند ای درخسار تو اید ای در رفایت جان خود قربان کنند خوش براو باقصه ای با با در بوته هیژان کنن سرمکش ها حافظ زعه می شب تا آه صبح از آینه وخشان کنن بقی ساده است نسبتاً چیزی نداره آشغانه هم هست شاهدان گرد دلبریز اینسان کنند. زاهدان را رخ در ایمان کنن هر کجا آن شاخ نرگس، پشت کفت گل روحانش دیده نرگستان کنن هر مو چون سازد آغاج سماع قتیان بر عرش دست افشان کن ای جوان فرقد گویی بزن پیش از آن که از قامتت سوغان کن عاشقان را بر سر خود حکمی هر چه فرمان تو باشد آن کن مردم چشم به خون آغشته شود بر کجا این ظلم بر انسان پیش چشمم کم تر است از قطره ای آن حکایت ها که از طوفان کنند. اید رفتار تو کو تا آشغان در وفایت جان خود قربان کنند. خوش برا با قصد ایگه کهل راز ایش خود در بوته هجران کنن سرمکش حافظ به آه نیم تا تو صبحت آینه رخشان فقط بعضی چیزای لطیف و زیبا و رزی زرافت های این اشاره میکنم چون غذر نستبتن غذر ساده ایست شاهد به معنی آدم زیباست قیلی هم برای زن و مردش هم نداره شاهدان یعنی زیبایان و هم میدونه که در جامعه اسلامی که زنان همیشه پشت پرده بودن روی زیبای زنانه خیلی در منظر و مرآ نبود رازه همین دلیل بسیاری از سعرها که بایی پسران جوان رو وصف کردند تون چاره نوید کنید و این رو به هیچ وجه دلیل این نمیشه گرفت که اینا جز طایفه اسمال قربون هست و شاهکار رو نویزند ممکنه باشن ممکنه نباشن بنده وکیل مدافع هیچ کدوم از سعرها نیستند. به خصوص که شاعر جماعت وسعت مشرب هم دارد یه قدری تسلوب و فصوب در عقیده نداری. این است که ممکنه باشه. اما به صرف اینکه که زیبایی پسرانه رو یه شاعری بحث کرده بگیم که این اون کاره این اصلا درست می که ممکنه اصلا نداری. هیچ دلیلی چون هیچ زیبایی ای وجود نداشته. این زنش رو میدیده و بچه شدید که به اینا که عادت کرده و چنین و همین دلیل هم بیشتر زیبایی زنانه زیبایی چینی میگه به تنگ چشمیه آنطور که لشکری نازم که حمله بر من مسکین یک خبا آبا سعده هر که تماشای روی چون قمرت کرد سینه سفر کرد پیش تیر ملامت همه میدونند که روی نجاد سفید گرد گرد اختاره و بعضی نسخه های سعدی هست هر که تماشای روی چون سفرت کرد سپرک کرد پیش دییر انابرا اصل زیبایی زنانه خیلی در جاهای نادری مثلا در داستان لیسراممی یا در داستان های نظامی زوان داست... نظامی آدم نیست که هیچ دنبال بسته زیبایی پسران نبود و ممکن شما استادال بکنید که خو این دوره دوروره حتما اونایی یه ریتی به کپشتون داشتن و چطوری که نظامی اینور نیست باگرد جوابش این هست که نظامی در جای زندگی میکرده در گنج که سرحد ایران و روم و قفخاز و اینا و صاحبان مذاهب مختلف در اینجور افتا آمد داشتن و بسیار زنای بیپرده میدیده به علاوه مادرش هم کرد بوده و ما میدونیم که هیچ وقت هجاب در بین عشایر وجود نداشت بنابراین نظامی زیبایی زنانه رو میدیده و دلیل هیچ احتیاجی نداشت که زیبایی پسرانه رو هست هر حال شاهد میتونه زن باشه میتونه مرد ترکن شاهدان گرد دلبری زینسان کنند زاهدان را رحمه در ایمان کنند میگه اگه اینجور به این ترتیب بخوان دلبری بکنند هیچ زاهدی هم جون به در نمیبره ایمانشو از به میبرن رخمه میکنند درش هر کجا آن شاخ نرگس بهش محشوق رو تشبیح میکنه به یه شاخه نرگس ظریف و زیباست، که ذریف سبس نازوکه بالاشم گل نرگستی که خشنگ محشوق رو تشبیح میکنه به شاخه نرگس. در زم نرگس حالا ببینید حواسش چقدر جمعه در زم نرگس بسیار تشبیح شده به چشم نرگس نرگست که پیش تو بشکر چشم در نگاه نده به چشم اینه که هر کجا آن شاخ نرگستش کفت گلروهانش دیده نرگستان کنه در حال وقتی که نرگس رو تشبیح میکنن به چش همیشه مشفه باید از مشفهان به کمتر زیبا باشید یا شجاع وقتی میگن که ناصر پل مثل رستنه معنیش این نیستش که این از رستم گردنش کلو حتما رستم که اون میشه تجاهتر و فردیوتره که اینو به اون تشکیه بنابراین وقتی نرگس رو به چشم تشکیه میکنم خود این کار معنیش اینست که چشم از نرگس زیباتره دیگه درسته؟ چشم از نرگس زیباتره این دلیل میگه نرگس نشه میگه این شاخ نرگس هر جا تو زیبارهان چشم این. این چقدر چونه و چقدر توجه داره به اینکه وقتی میخواد با بایرو بگه برسونه به اون خوب او، یار ما چون سازد آغاز سما سما متاسفانه در ایران و رخته شد ولی در ترکیه و در پاکستان هست نوعی موسیقی در حقیقت مذهبی مذهبی هم نیست است چون ایران معتقد بودن که رقص و موسیقی باعث لطیف کردن روح و برای تصفیه روح از این دوتا استفاده می حتی علماء خیلی بزرگ در این باب حرفای زیاد دادن بعض جا بفتن حرام، بعض جا بفتن حلال انباعثام سعدی در چهارس پنگ بیت ساده نظر امام غزالی رو که سندیت داره میگه میگه نگویم سما ای برادر اگر بر مستمع را بدانم که سما برای کسی گر از برج معنا پرد تیر او یعنی اگر فکرش متوجه آلن معناست فرشته فرو ماند از تیر او اگر مرد لحوست و بازی و لاق قوی شود دی در دماغ پریشان شود گل به باله سهر نهی زم که نشت آفدش رو سبر می که و سما بر اهلش به همین دلیل هم مشایق سوفیه بعضی رو در مجلس سما راه به هر حال این در پاکستان الان جنبه عمومی گرفته و بش میگن قوالی و گاهی های خیلی خیلی ممتاز درجه یک هم هستن که اینا میان و بینونم نمایش میدن سازهای خاصی دارن و کارایی و اوق العاده خیلی جالب در در 20 سال پیش که بنده فایزن فرهنگیان در پاکستان که قبول در جبولی بود که شاید الان مرده باشه الان کسانگیجا شو گرفتن به عزیز عزیزمیان این عزیز عزیزمیان ما دعوت کردیم به جشن هنر شیراز این ده ها هزار جمعیتی که در این جشن هنر رو زور پیده کرد این تمام اینا رو رفت هست با حال اینا نشستن هم پاز یعنی کنم ولی در چیزها در عزیزهای مولوی هم که اینا این دستگاهاشون و بندبساتشون و اون رقصشون و اون سمایشون و اینا رو الان نمایشی کردن و من در سال 70-72 هفتاد، که در لندن بودن یه بار اینا آمده بودن اونجا از اون سال با همون لباسای دوره مولانا با همون سازای دوره مولانا و اول شمدی آیه قرآن تلاوت میکردن که یه خانندهی بود کور بود و چون قرآن رو از حفظ میکنم بهش میخفتن حافظ از خوشم با حافظ رو کسی میگه که قرآن رو از برداشته داشته باشه و به صدای خشک بخوان. بنابراین بنده کهی پدر موم هم, هم که تقریبا تمام قرآن رو از برداشت هیچ وقت له و حافظ نمیتونست ب چون صدای خشک نداره بنده که بدتره این است که حافظ میشون گفتن اولیه چیزی خوند رو بعدم شروع دادن به چیز و درشان در چرخ آمدن با آین خاصی که امیدوارم دیده باشهگه من حال رو اون در حال اون سماع به خیلی از مشایخ تصوف و علمای دین بعض گفتن حلال بعض یا خیلی اختلاف نظر در این میگه یارما چون سازد آغاز سماع به این سماعش خالص و قلص و از قلب و نیاست که فرشتگان در عرش دست دفشانی می در عرش دست کنند. عرش اصلاً معنی تخت و کرسی به معنی سندلی است هنوز در پاکستان میگن کرسی برای کسی سندلی میخوان بذارن میگن کرسی رو بیان یعنی سندلی البته در قرآن عرش و کرسی به عنوان مقام الهی آمده است و هستا ای یه آیه بسیار معروفی است آیه کرسی که امیدوارم اغلب دوستان حفظ داشته باشم سلام اعضا تو پوششون باشن الله ولا اله الا الله و الارجع يوم لا تخلو وحسنتم بلانو له ما في السماوات و ما که اما آیه هایی که عرش و کرسی نه درش اومده بش دیگه آیه های متشابه یعنی آیه هایی که معنیش معلوم نیست ان الله خلق السماوات و الارض في سته ايام ثم استوى على معنیش این است قران زمین و آسمون بود در چی روز آخری بعدن روی تخت دراز تسلنا قابل قبول نیستن خدا رو جس نمی دونن اصلا این است که میگوید که در قرآن خودش صریحا میگوید که آیات قرآن دو ژوریه که محکم محکم یعنی آیاتی که درش حکم نه اینکه محکم معنی قرص و محکم نیست محکم یعنی آیاتی که درش حکم آمده مثل آیاهایی که صفه نماز بخونیم، صفه بیجو ببینیم، صفه حج رو ببینید، میگن آیات محکم یا بهش میگن آیات الافهام، آیات الافهام میشه. بعد میگه یه آیه های دیگری هست که متشابه آیات صد دست شمارن. آیات دیگری هست که بهش میگن متشابه و این آیات متشابه که میگه عمر کتاب، مادر کتاب، لا یعلمها عبیل هو الله و راسخون هیچ کس تعبیر و تفسیر اون نمیدونه. مگر خدا و کسانی که در علم راسخ یعنی پاورجا و عصر حال عرش رو داشتم می‌گفتم یارو ما چون سازه دا حاضر بر عرش دست بخشان کنند. ای جوان سرفر گوی بزن گوی زدن ماره بازی توگانه ت ولی به معنی موفق شدن و موفقیت ادیه کردن یعنی کاری بکن بله بگی جوانی موقع فعالیته برای اینکه آدم یه ذخیرهی، حالا علمی، پومی و هر جور دیگری برای روزگار پیگیش باقی بکره میگه ای جوان سرغت قد بلند زیبای لیر اومن گویی بزن پیش از آن قامت قامتت چوگان کنن چوگان خمیده میگه پیش از این چه خمیده بشی و پیری تو رو به صورت در بیاره فرصت و خمیده یه کاری بکن این چیزی هست مال پسر جوانی اون اولش اول شعر اندرده خلاص جوانی در سر ریش گفت تیری که کمانت بچند تیر بخندید گفت گفته جوان چرخ سرانید دهد رایی ای جوان سرخند تویی بزن تیش از آن که از خامتت توبان کنه آشقان را بر سر خود, خود هر چه فرمان تو باشد اردم چشمم به خون آغشته شد چند بار اینو گفتم این اشک خونین و اینا مبالغه شاعرانه است هیچ وقت عشق خونین نمیشه شما اگه شب ها و روز ها گریه کنی خون به جای اشک تو نمیاد ولی واقعا چش با چش برجسته میشه و چشم سرخ این رو تعبیر کردن به مردم چشم رو در عربی بهش میگن انسان ال این. همون ترجمه مردم چش مردم ها که چش یا مردم چش این سوراخ کوچیک سو سوراخی که از اون دریشه تام دنیا رو می‌بینن مردم به همین دلیل اسم گذاشتن مردم یا مردم ها که چشم در عربی هم بهش میگن انسان ال عین اینه که میگه مردم چشم من به خون آغشته شد در کجا این ظلم بر انسان کنند این انسان که اینجا ورده ایهام داره هم به معنی مردم چشمه هم به معنی دار پیش چشمم کمتر است از قطره آن حفایت ها که از طوفان کنه قصه توفان توفان قرآن حضرت موهه که این قصه در بین تقریبا تمام ملل هست در قصه های باستانی ایران هم یه طوفان برف و چون طوفان آب علاجش داختن کشتی وان که سنم توستشش، یعنی ایران منطقه‌ای دست در برف بیاد، بارندگی نباشه، اختلاف عراق و اینان مری، تو اونجا کوپنتین تو به بارندگی شدید نمی‌شود، شط العرب تو ولی در یام بار. اینی که می‌گه در دوره جمشید اهورام از داغ جمشید گفت که اهریمن در فضا به اثار بدی و بزودی برس شدیدی خواهد باری، و سرمای شدیدی در ذهن به شما بگم که در عویستا تیزخ جایگاه بسیار سرد این یعنی مردم در اونجا از سرما مارید تا تصدبور زمحریر که در اسلام هست که میگن سیده ها رو نمیورن جهنم نمیدیسن زمحریر اینکه زمحریر خیلی آدم بیشتر خوش میشه به این سکرین تاکه سرما مثل که از هر حال این نشان این است که ایرانی از نواحی بسیار سردی مهاجرت کردن و به ایران این است که یکی از های بزرگ به نظرشون سرما یه احورام گفت که احریمن وزیدی حمله خواهد آغاز کرد و برس بسیار خواهد باری و وزیره این است که یک جایز سرگید باغ سرپوسیده بسازی به نام ور اسمش ور و در عوستا و در آثار ادبی به نام ور جمکر یعنی وری که جمچید او رو ساخت محروب بعد دستور میده که طولش چقدر باشه عرضش چقدر باشه پنجره چجور بذاری بعد چکار بکنی بعد بیده از حیوانات کیا رو بیاری خیلی خوب از حیوانات انتخاب کنی آدم را رو همینطور آدم های گوش پشت توسید دندان کسانی که عیف های ظاهری یا باطنی دارن اینا رو بیر بر نیاری یه عده ای رو بیاری اونجا نگه داری بکنی تا توفان بر، بردرب شه و بعد اینا پیان پیرون و نفر به بشر در چین و ژاپن و اینجا هم افتانه های هست دلیلش هم اینست که این قهر عظیم طبیعت و برحال هر قومی هر جایی که باشن برای یکی از بزرگترین بلاهایی که اونکنه بیاد اون توفان. این توفان اینست که خود طوفان رو هم سابقه خیلی قدیمتر داره اولین جایی که در اشاره شده در هماسه گیرگمش گیرگمش مال چیز باقله و تاریخش برمیگرده به چار پنیزا سال پیش در دست این و خوندن و ترجمه کردن پسطه طوفان در اونکن پیش چشمم کمتر است از قطره ای. آن حکایت ها اید تو تو تا آشغان در وفاید جان خود خود باند. اولا هیچ وقت در ایران قدیم به نوروز نمیگفتن اید یا میگفتن جشن یا میگفتن نوروز علم دولت نوروز به سهرابر لشکر زحمت سرما به سر مابطا عبر آزاری بر ماد نوروزی و زید میرسیم ازید انواع اصلا این ها هست همشت صحبت نوعید که میگن دوتاست برای اهل سنت. یکی اید قربانه در دهم همه ذلهجه اید ازهابش میگن به فارسی هم اید گوزفند خوشان روز آخر حج در بناسان حج، حاجی ها قربانی بکنن کسان دیگری یعنی هم که موفق و زیارت حج نشدن به میگه که قربانی میکنن و رو تخصیم میکنن به این مستحر او که هم میده فتره به روز اول شتباله و از به رفتن روزه که باز حلال ماه شتباله که دیدن فرداشت روزه گرفتن حرام. تو بشت بگن میده در اون روزم باز یه حق و حسابی که اشخاص باید پتریگه بدن و پتریگه عبارت از, از یه و زکاتی یه نوع مالیات دینی تو باید به تعداد افراد خانواده بذارن کنار پول یک من قوت قالب یعنی اگر در شهر این می پرنج میخورن اگر نون میخورن نون اگر خورما میخورن خورما بگذارن و برای هر فردی و این رو بدن تو آدم مستحر این جزء زکات و بشت میگن زکات پتریگه این رو بعد تیش از قرار رسیدن اید کنار بذارن از مال خود کنفرا بکنن و بعد در روز اید فرس یا روز بعد اشخاص به هر حال اید همین دوتاست ایچه احل سنت و ما شیعه های دوازده امامی دوتا اید دیگه هم داریم یکی اید قدیره که هیچده همه و ما معتقلیم که در اون روز رسود اکشم مولا علیه ابن عبی طالب رو به جانشینه خودش منصوب فرمود و مقرر فرمود که در جایی به نام قدیر خم منبری از جاهای سسرها تحصیب بدن وره خالای منبر و فرمود که من کنتو مولاه فعضا علی جون مولاه اللهم وال من والاه و عاد من آداه و من نسره و من فضله و این رو همه همه هوایف اسلام این حدیث نروی نه اینکه فکر کنید که عرصانت این حدیث رو نهاره نکنید منطقه ها که چه من مولای هرکس هستم علی مولای اوست این به معنی علی جانشی نهانه نید معنیه که ما این حدیث رو می کنیم عرصانت قبول ندارم به هرحال یکی اید قدیره مجده هون زل هجی یکی هم اید نیمه شعبانه که به ما روز تولد. امام دوازده هم حضرت قاین خیلی این دوتا رو مثلا از دوره صفحه بعد با آب و تاب فراوان برگزار میکردن برای اینکه ایده مخصوص چیه تو کو یه رخصار تو ایده دوتو خانلوی یه چیز قشنگی داریم با فره بخونم خدا رحمت کنیم یه گفتمش بوسه دهی گفت هنوز نقبت آن نرسیدن برای. بر تبریک ببوس از من روز چون به روز دهیده در مرا گفتمش موعد یک ساله تا مدتی سخت مدید مرا جان من بوسته بید حضر ما یاد. روز بیدار تو اید است و اید رفتار تو کو تا در وفاید جان خود قربان کن روشن خوش برا با خوش خوشت یه اصطلاحی بوده در دوران حافظ باز در بهت دیگه میگه بده کشکی یمهی تا خوش برا این از این دریا ناخید آترانه خوش برا یعنی با رضای خاطر و با گشاد رویی مقابل کردن بود که میگه که با قصد خوش برا یعنی اگر قسطه‌ای داری، دجم و بدخون نباشت و این قسطه‌ا رو با گشاد روی کن خشت ای دل چهل راز، در نسته مرحوم غزینی هست ای خوش در بوته هجران کنم. موته، وسیله زرگری، دری از گل نحسوس که کاغت دو هزار دریجه، داره و طلای آمیخته با چیزای دیگر رو میریزن توی او و میزنن توی پوره هر فلز دیگری یه همراه تلاباشه اکسیده میشه می‌سوزه و از این میریه می فقط تلاب باقی امونه خالص و میاد بیرون سعدی میگه سیاه سیم زرندو سیاه سیم یعنی سرک سیم سیاه یعنی سرک سکه های قلب میساخن از سرک بود روش یه پوشش تلاب بود میگه یا نیم زرندود چون به بوته برند خلاف آن به در آیت فرقه این یعنی چیزی باید در نمی رسید فکر کم دارد برحال بوته محل گداختن تمام فلزات و سوختن نیست شدن از عزیزیم میگه هجرانم برای عاشق در حسن بوته میگه ولی اهل راز در بوته هجرانم هم عیش حالا اگه نصف قضیمی باشه عیش خوش اگر نصف فانلری باشه عیش خود فرض نیست کار مکش حافظ در اهنین شب تا صبح است آینه کنند همیشه عبادت و دعای نیم شدی به دلیل اینکه شب آخر شب آرام خیلی فرشتانیم حواس آدم جمع کسی مراقب مراقبه احوال آدمی این است که کسانی که میخواستند عبادت خالی از روی و ریا بکنن اینا اواخر شب رو خواب می کردن در این و نماز هایی هست نماز شب به از راهتان نمید میگه تو هم آهی اگر میخوای بکشید بذاریم این شب در ضمن صبح رو باید که صبح تو اون معنی که شما فکر کنید نیست صبح تاریخ تایید کنید من این فارسیش هست شبگیر شبگیر یعنی صبح و اولین نشانه های پلو آفتاب سیده میشه که دو تا یکی رو میگم صوف کازب یک رو میگم صوف ساده صوف کاذب اول طولو میکنه مثل یه میله روشن در افق مشت رسیده میشه بعد از مدتی این مرس بعد از یه روپ نیم ساعت من اینا دوباره روشنایی پخش در افق و مشکل میشه و صبح صادق سه وقتی آفتاب زد یه روزه یه صبح میشه حفظ که به صدق پوش که خورشید زاید از نفس است یعنی آفتاب نفس صبح نفس که میکشه کشه آفتاب به صدق خوش که خورشید زاید از نفس است که از دروغ یه روی گشت صبح نفس صبح نفوت یعنی صبح کازی سرمکش حافظ دعا نیم شب تا که صبح هست آینه رخشان کنند خب چه آینه ای از خورشید درخشن بکن